خوش باش که پختند سودای تو دی، ایمن شده از همه تمنای تو دی، تو شاد بزی که که بیتغازای تو دی، دادن قرار کار فردای تو دی. گر آمدنم به من بودی نامدمی، ور شدن به من بودی کی شدمی، بهزان نبودی که اندر این عالم خاک، نه آمدمی نه شدمی نه آدم چو سراهی بابد روح می، غالب چونهی بابد صدایی در بی، دانی چه بابد آدم خاکی خیام، بانوس خیالی و چراغی در بی. ای چرخ، همه خسیص را چیز دهی، یا یعنی مابه و آسیا و کاریز دهی، آزاده به شب گروگان نهند، شاید که بر این جنین فلک تیز دهی.